به جوان و فرهنگ بنا خالق افسانه و حقیقت سلام قصه ها و افسانهها با زندگی، پیوستگی و شباهت دارند. اما خود زندگی نیستن و تلخی و ناملایمات زندگی رو هم ندارن قصه و افثانه که در همه دورهای عمر از کودکی تا پیری آدمی رو به سوی خودش می‌کشونه و براحتی بردل دل شینه در برمیه این هفته هزار افسان افسانی ایرانی قلعه دیوان رو براتون نقل کنم برگرفته از کتاب سمندر چلگیس گردآوری محسن میهن در روزگاران قدیم پادشاهی به نیکی و عدالت سلطنت میکرد و مردم همه از پادشاهی اون راضی بودن تا اینکه یه دفعه چشمای پادشاه بینایی خودش را از دست داد حکیمان زیادی از گوش و کنار برای درمان و مداوای پادشاه به قصر اومدن ولی هرچی تلاش کردن افاق نکرد که نکرد و از اونجایی که پادشاه به سرزمین های زیادی سفر کرده بود، حکیمان گفتند تنها راه حل آوردن خاک سرزمینی که پادشاه به اونجا سفر نکرده باشه. اون خاک شفای چشمای پادشاهه. این خبر که به گوش پسران پادشاه رسید با هم به فکر فرو رفتن و بعد از مشورت تصمیم گرفتن برای درمان چشمای پدرشون پیش خدم بشن. بزرگترین پسر پادشاه نزد پدر رفت و گفت پدر جان اجازه بدین من راهی زمینی بشم که شما تا به حال به اونجا پا نزشتین و مقداری از خاک اون دیار رو برای درمان چشماتون بیارم پدر آهی کشید و گفت آه پسرم من فرصت زیادی ندارم دوست دارم در این روزهای پایانی عمر تو در کنارم باشی و از من دور نشی پسر گفت نه پدر نه خواهش میکنم اجازه بده من خاک دیار ندیده رو برای درمان شما بیارم پادشاه هچند به این کار رازی نبود ولی بالاخره پذیرفت که پسر بزرگش راهی سرزمینی بشه که خاکش دوای دردونه پسر بزرگتر بار سفر بست و راهی شد. رفت و رفت و رفت، گشت و گشت و گشت و از این سرزمین به اون سرزمین تا دست آخر به سرزمین رسید که خیال میکرد پدرش تا به حال به اونجا قدم نزاشته. اون با خودش گفت، پدرم که هیچ، من مطمئنم پدر بزرگ منم این سرزمین رو ندیده. بعد مشتی از خاک اون سرزمین رو برداشت و اسم اونجا رو هم نوشت و به طرف قصر براه افتاد پسر بزرگ پادشاه با خوشحالی به قصر وارد شد و فریاد زد پدر پدرجان شفای چشمای شما در دست منه بالاخره پیداش کردم پادشاه هم شال شد و پرسید خب پسرم این خاک رو که آوردی از کدوم سرزمینه و وقتی پسر با قروع اسم سرزمین رو گفت پادشاه مکسی کرد و با نومیدی گفت پسرم بیفایده هست بیفایده است من تو سی سالگی دون سرزمین بودم پسر بزرگ پادشاه افسرده شد و پدرش رو تنها گذاشت و رفت در درای درگی هم دیگه مشورت کنن ساعتی بعد پسر دیگه پادشاه پیش پدر اومد و گفت پدر اجازه بدین منم برای آوردن خاک از دیار ندیده راهی سفر بشم قول میدم که پادشاه کلام پسرش رو قطع کرد و گفت آه پسرم برادر تو نتونست این کار رو انجام بده تو چجوری از پس این کار بر آید؟ نه نه بهتره در این لحظه های آخر عمر در کنارم باشین این برای من بهترین درمانه پسر گفت این چرفیه پدر من میرم و خاک شفا رو میارم و پادشاه هر چی گفت به گوش پسر نرفت و بالاخره هم پسر دوم راهی سفر شد رفت و رفت و رفت گشت و گشت و گشت از این سرزمین به اون سرزمین تا بالاخره به سرزمینی ناشناخته و دور رسید با خودش گفت آه، این یه سرزمین دوره، امکان نداره پدرم پاش به اینجا رسیده باشه بعد مشتی از خاک اون سرمین رو برداشت و اسم اون دیار رو هم نوشت که فراموش نکنه و راه افتاد که به وطنش برگرده بعد از مدتها بالاخره به پادشاه خبر رسید که پسرش اومده و از پادشاه موجدگانی هم خواستن پسر یه راست وارد غص شد و با حیجه خوشاری گفت پدر پدر این این اون خاکیه که تو رو شفا میده خاک یه سرزمین ناشناخته و دور پادشاه پرسید اسم اون سرزمین ناشناخته و دور چی بود پسرم وقتی پسر اسم اون سرزمین رو گفت پادشاه سکوت کرد پسر پرسید پدر پدر تو به اون سرزمین سفر نکردی درسته پادشاه با ناراحتی جواب ده. پسرم پسرم من تو پنجاه سالگی اونجا بودم پسر با نومیدی به سراغ برادرانش رفت تا باز هم چارهای میاندیشن و پدرشون را از نگرانی نجات بدهند شاعتی بعد کچکترین فرزند پادشاه که جوانی هوشمند و شجا بود پیش پدر اومد پادشاه با دیدن کوچکترین فرزندش گفت: امیدوارم دو همسله برادرای دیگت قصد نداشته باشی به دیار ندیده سفر کنی کوچکترین فرزند پادشاه جواب داد البته پدر البته که منم قصد دارم به دیار ندیده سفر کنم پدرشان من هم میخوام بختم رو در این مورد امتحان کنم پادشاه گفت پسرم دو تو از برادرات نتونستن و کارشون به نتیجه نسید حالا تو از جذب کردی که بری و اون خاک که رو برای پدر پیرت بیاری نه نه پسرم من نمیخوام اتفاقی برای تو بیفته وگرنه تا آخر عم خودم رو سرزنش میکنم کوچکترین فرزند پادشاه گفت این چه حرفیه پدر من میخوام وظیفم رو انجام بدم پادشاه باز هم نپذیرفت اما پسر اصرار کرد و پادشاه قبول کرد پسر باروبونه خودش رو بست و سوار رس به سپیدش شد و رفت و رفت و رفت گشت و گشت و گشت و از این سرزمین به اون سرزمین تا به سرزمین روشن رسید اونجا اونقدر روشن بود که پسر از دیدن این همه روشنایی به حیرت افتاد اسب شاهزاده که تا این موقع ساکت بود به حرف اومده گفت ای شاهزاده در این سرزمین قرار یه توطی زیبایی بیاد و مردم این دیار برای اون قصری می‌سازن. توتی بر بلندترین قصر می‌شینه و آواز میخونه و بعد هم از این سرزمین دور نه. شاهزاده یعنی همون پسر کوچیک پادشاه گفت پس پس ما هم میتونیم برای اون توتی یه قصر بسازیم اسب گفت البته که میتونیم اون توتی سی روز دیگه به این سرزمین میاد و ما در این مدت فرصت داریم که خشت بیاریم و قلعه و قصری بسازیم شاهزاده و اسب شروع به ساختن قصر کردن و چیزی نمونده بود که توتی از راه برسه. شاهزاده و اسب سر روز بزرگترین قصر رو برای توتی ساختن بعد اسب گفت ای شاهزاده ما باید گلابی درست کنیم بعد تو بالای قصر بری و گوشه پنهان بشی وقتی توتی اومد و آواز خوند مبادا جذب اون بشی و خوشت بیادا بعد باید گلاب رو بکشی و توتی رو در بند کنی و فورا از اونجا دور بشی و خودت رو به من برسونی تا از این سرزمین بریم شاهزاده با دقت به حرف های سفیدش گوش داد و بعد رفت و خودش رو در گوشه از بلندترین قصر پنهان کرد یعنی همون قصری که با کمک اسب سفیدش ساخته بود بعد از چند ساعت توتی اومد و یه دهن آواز خوند و دل شاهزاده نزدیک بود که از خود بی خود بشه ولی قلاب رو کشید و توتی اسیر شد در این موقع صدای دیوها بلند شد بگیر بگیر بگیر شاهزاده اعتناع به صدای دیوها رفت و خودش رو به اسب سفیدش رسوند سوار برون شد و به تاخت قلعهٔ دیوها رو پشت سر گذاشت توی راه شاهزاده به اسب گفت ای اسب من این توتی چقدر قشنگه اسب گفت حالا کجاش رو دیدی اگه این توتی توی قفس خودش باشه روزی سه بار آواز میخونه. شاهزاده پرسید قفس این توتی کجاست هر جا باشه میرم و اونو پیدا پیدا میکنم. اسب سفید جواب داد قفس این توتی توی قلعه دیوهاست دیوها سه ماه بیدارن و سه ماه در خواب الان هم دیوها بیدارن و تا وقتی ما به اونجا برسیم وقت خوابشونه. شاهزاده سوار بر اسب رفت و رفت تا به قلعه دیو ها رسید. اسب گفت امروز اولین روز خواب دیو هاست. آروم برو جلو. به خونه اول نه، به خونه دوم نه. به خونه سوم که رسیدی قفس توتی به درخت آویزونه. قفس رو بردار و بیاد یادت باشه هرچی شنیدی بگیر بگیر کسی توتی رو گرفت و قفص رو هم برد توجه نکن و به پشت سرتم نگاه نکن شاهزاده افثانی ما آروم و با احتیاط وارد قلعه شد دیوها تو خواب بودن شاهزاده رفت جلو تا به درخت رسید و قفس رو آویخته دید قفس رو از درخت برداشت و اومد صدای دیوها بلند شد بگیر بگیر اون که توتی رو گرفت قفس رو هم برد و همون جوری که اسب سفید گفته بود به حرفای اونها توجهی نکرد حتی پشت سرش رو هم نگاه نکرد و فورا خودش رو به اسب رسوند وقتی از اونجا دور شد توتی رو توی قفس انداخت توطی یه دهن آواز خوند شاهزاده که خیلی خوشحال شده بود به اسب گفت ای اسب من باید کاری کنی که اون درخت هم مال من بشه اسب گفت ای شاهزاده طمع خوب نیست چرا از فکر پدرت دور شدی اون منتظر توه؟ شاهزاده گفت من فقط شیفته این توطیام ببین ببین چقدر زیوا و قشنگه حالا حالا بگو چجوری میتونم اون درخت رو به دست بیارم بگو خواهش میکنم اسب گفت هرچه برای قفس انجام دادی برای درخت هم انجام بده شاهزاده با خوشحالی سوار بر اسب شد و تاخت تا به دیو دیوها رسید شاهزاده وارد غلعه شد آروم از خوله اولی و دومی گذشت و به منزل سوم رسید اما هرچی کرد نتونست درخت رو از جا بکنه نیروی بیشتری به کار برد تا اینکه درخت از ریشه کنده شد در این موقع صدا اومد بگیر بگیر اون که توتی رو گرفت و برد قفص رو هم برد حالا درخت رو هم برد شاهزاده به صدا اعتنایی نکرد و رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد رفت و به اسب رسید و سوار بر اون از قلعه دیوها بیرون اومد توی راه اسب به شاهزاده گفت تو همون کسی هستی که میتونی دوای چشم پدرت رو پیدا کنی شاهزاده درخت رو توی زمین کاشت و قفص رو به اون آویزون کرد توتی یه بار دیگه آواز خوند و شاهزاده به اسب گفت آه چقدر زیبا میخونه اسب گفت اگه صاحبش رو ببینه از این زیباترم هم میخونه شاهزاده با شنیدن این حرف پرسید من من صاحب این توتی رو میخوام اون کی و کجاست اسب سفید جواب داد صاحب این ای زیبا زیباست که اگه تو اونو پیدا کنی به دوای چشم پدرت هم دست هایی یافت ملکه توی قلعه دیو هاست و این بار هم شاهزاده به قلعه دیو ها رفت قبل از وارد شدن به قلعه اسب به شاهزاده گفت منزل اول نه منزل دوم نه منزل سوم ملکه اونجاست فقط یادت باشه تنها یه بار میتونی به اون نگاه کنی یه نظر شاهزاده منزل به منزل رفت تا به ملکه رسید با دیدن ملکه شاهزاده یک دل نه صد دل آشق اون شد اما می که فقط یه نظر می به اون نگاه کنه خلاصه ملکه رو همراه خودش برد در این موقع صدا اومد اون که دوتی رو گرفت و برد قفس رو هم برد درخت رو هم برد حالا ملکه رو هم از اینجا برد شاهزاده به صدا اعتناعی نکرد و رفت تا به اسب رسید و روی اون سوار شد اما ملکه بیهوش شده بود شاهزاده گفت خدای من چیکار باید کرد اون بیهوش شده اسب گفت نه اون بیهوش نیست اون تخت زرینش رو میخواد اون بدون تخت راحت نیست شاهزاده پرسید تختش کجاست؟ اسب جواب داد توی همون قلعه دیوها اما باید گلدون رو که بالای سر تخت ملکه است برداری و بیاری شاهزاده گفت اون،, اون گلدون به چه کاری میاد اسب گفت خاکی که شفای چشمهای پدرته توی اون گلدونه فقط یادت باشه که این بار دیوها سرصدای بیشتری میکنن ولی تو اعتنای بونها نکن و پشت سرت رو هم نگاه نکن در این صورتی که به اون که میخوای میرسی شاهزاده این بار هم بر اسب سفیدش سوار شد و به طرف قلعی دیوها براه افتاد شاهزاده از منزل اول به منزل دوم رفت و در منزل سوم از گلدون خاک برداشته و تخت رو هم به پشت گرفت و برگشت در این موقع صدای دیوها بلند شد خیلی بلندتر از دفعه قبل و شاهزاده احساس کرد که دیوها در چند قدمی اونن اما پشت سرش رو نگاه نکرد و خودش رو به اسب رسوند سوار برون شد و به تاخت از قلعه دور شد و رفت وقتی شاهزاده به ملکه رسید تخت زرین رو به اون داد و ملک هم که مهر شاهزاده به دلش نشسته بود از اون تشکر کرد اونا به طرف سرزمین خودشون راه افتادن چون می که پادشاه سخت در انتظارشونه وقتی رسیدن شاهزاده یه راست پیش پدرش رفت و گفت پدرشان این دوای درد شماست، بالاخره پیداش کردم پادشاه پرسید، پسرم، اونو از کدوم سرزمین آوردی؟ شاهزاده جواب داد، پدرشان همون سرزمینی که قلعه دیوها در اونجاست پادشاه فکر کرده گفت، نه من تا به حال اسمم چه سرزمینی رو نشنیدم شاهزاده با خوشحالی خاک رو آورد و به چشم پدر کشید و چشمای شاه بینا و روشن شد فردای اون روز شهر رو آینوندون کردند کردن و برای شاهزاده و ملکه خانم هفت شبان روز جشن عروسی گرفتن دانی ایرانی قلعه دیوان رو براتون نقش کردم بر گرفته از کتاب سمندر چهلگیس گردآوری محسن میهندوست بیشک اگر افسانه های تمام اقوام ایران زمین رو گردآوری و ثبت و ضبط میکردیم اکنون ما گنجینه ناب از افسانه های شیرین و شنیدنی در داشتیم که با بهرهگیری از اونها آثار بزرگی رو در غالبهای فیلم، کارتون و دیگر عرصه های نمایشی به جهانیان عرضه می کردیم. هفته ها که میراث معنوی این مرز بر احتیمه ماست قصه شیری نیست. که چشم من از قصه تو می هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سربیر زینت سالح بود فیراستار سید فریبرز نوربخش، نور بخش فاطمه گنجلی تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا فرصتی دیگر و افثانهی دیگر بدرون